اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم امیم به نام خدابند بخشنده بخشایشگر هامیم امیم الكتاب من الله این کتاب از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است ما خلقن السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجر مسمه كفروا کفرو عما انذرو معرضون ما آسمان ها و زمین و آنچه را در میان این دو است جز به و برای سرامد معینی نیافریدیم، اما کافران از آنچه انظار میشوند شوند روی گردانند قل ارائیتم با تدعون من دون الله ارونی أروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ايتون ب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين بهانان بگو این معبودهایی ای را كه غير از خدا پرستش مي به من نشان دهید چه چیزی از زمین را آفریده اند یا شرکتی در آفرینش آسمان ها دارند کتابی آسمانی پیش از این یا اثر علمی از گذشتگان برای من بیاورید اگر راست میگویید و من اضل وهم وهم من دعائهم غافلون. چه کسی گمراه تر است از آن کس که معبودی غیر خدا را می‌خواند که تا قیامت هم به او پاسخ نمی‌گویند و از خواندن آنها کاملا بی خبر است و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء او كانوا بعبادتهم كافرين و هنگامی که مردم محشور میشوند شوند، های آنها دشمنانشان خواهند بود، حتی عبادت آنها را انکار می کنند و اذا تتلا عليهم آیاتنا بینات قال الذین كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبین هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده می شود کافران در برابر حقی که برای آنها آمده میگویند این سهری آشکار است ام یقولون افتراه قل ان افتریتهو فلا لی من الله شیئا هو اعلم بما تفیضون فیه کفابه و و هو الغفور بلکه میگویند این آیات را بر خدا افترا بسته است بگو اگر من آن را به دروغ به خدا نسبت داده باشم شما نمیتوانید در برابر خداوند از من دفاع کنید او کارهایی را که شما در آن وارد میشوید بهتر میداند همین بس که خداوند گواه میان من و شما باشد و او آمرزنده و مهربان است قل ما کنت بدعا من الرسل وما أدری ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما یوحی إلی وما أنا إلا نذیر مبین بگو من پیامبر نوظهوری نیستم و نمیدانم با من و شما چه خواهد شد من تنها از آنچه بر من وحی میشود پیروی میکنم و جز بین دهنده آشکاری نیستم قل ارایتم ان کان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد و شاهد من بنی اسرائیل علا مثله فآمن و استکبرتم الله لا یهدی القوم الظالمین بگو به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خدا باشد و شما به آن کافر شوید در حالی که شاهدی از بنی اسرائیل بر آن شهادت دهد و او ایمان آورد و شما استکبار کنید چه کسی گمراه تر از شما خواهد بود خداوند گروه ستمگر را هدایت نمیکند و قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه واذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا اثف قدیم. کافران درباره مؤمنان چنین گفتند اگر اسلام چیز خوبی بود هرگز آنها در پذیرش آن بر ما پیشی نمی گرفتند و چون خودشان به وسیله آن هدایت نشدند می گویند این یک دروغ قدیمی است من کتاب موسی امام و رحمه وهذا كتاب مصدق لسان العرب لينذر الذين ظلموا لينذر الذين ظلموا وبشر للمحسنين و پیش از آن کتاب موسی که پیشوا و رحمت بود نشانه های آن را بیان کرده و این کتاب هماهنگ با های تورات است در حالی که به زبان عربی و فسیح و گویاست تا ظالمان را بیندهد و برای نیکوکاران بشارتی باشد این الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون <سرح> کسانی که گفتند پروردگار ما الله هست سپس استقامت کردند نه ترسی برای آنان است و نه اندوهگین میشوند اولئک اصحاب الجنة خالدین فیها خالدین فیها جزاء بما كانوا یعملون آنها اهل بهشتند و جاودانه در آن میمانند این پاداش اعمالیست که انجام می دادند و وصین الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها و, و ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال, قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اینی تو بتو و اینی من المسلمین ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند مادرش او را با ناراحتی حمل می کند و با ناراحتی بر زمین می گذارد و دوران حمل و از شیر باز گرفتنش سی ماه است تا زمانی که به کمال قدرت و روشت برسد و به چهل سالگی بالغ گردد میگوید پروردگارا مرا توفیق ده تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم دادی بهجا آورم و کار شایسته انجام دهم که از آن خوشنود باشی و فرزندان مرا سالح گردان من به سوی تو باز می گردم و توبه می کنم. ومن أز مسلمانهم أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عمرو ونتجاوز ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون أله کسانی هستند که ما بهترین اعمالشان را قبول می کنیم و از گناهانشان می و در میان بهشتیان جای دارند. این وعده راستی است که وعده داده می والذی و اللهی قال لوالدهیه اُفِلَكُمَا تَعِدَانِیَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرْآنُ مِنْ قبلی. وهما هما الله ویلک آمین این وعد الله حق فيقول, فيقول ما هذا ایلا اساطیر الأولين و کسی که به پدر و مادرش میگوید افت بر شما آیا به من وعده میدهید که من روز قیامت مبعوث میشوم در حالی که پیش از من اقوام زیادی بودند و هرگز مبعوث نشدند و آن دو پیوسته فریاد میکشند و خدا را به یاری نی طلبند که وای بر تو ایمان بیاور که وعده خدا حق است اما او پیوسته میگوید اینها چیزی جز افسانه های پیشینیان ها نیست اولائك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبورهم من, من الجن والانس انهم كانوا خاسرين آنها كساني هستند که فرمان عذاب درباره آنان همراه اقوام کافری که پیش از آنان از جن و انس بودند مسلم شده چرا که همگی کار بودند ولکن کلهم درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا و برای هر کدام از آنها است بر طبق اعمالی که انجام داده تا خداوند کارهایشان را بی کم و کاست به آنان تحویل دهد و به آنها هیچ ستمی نخواهد شد و یوم یعرض الذین كفروا علی النار اذهبتم طیباتكم في حیاتكم و الدنيا في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم, وبما كنتم تفسقون آن روز که کافران را بر آتش عرضه کنند به آنها گفته میشود از طیبات و لزایز در زندگی دنیای خود استفاده کردید و از آن بهره گرفتید اما امروز عذاب ذلت بار به خاطر استکباری که در زمین به ناحق کردید و به خاطر گناهانی که انجام می‌دادید جزای شما خواهد بود اذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللَّهَ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ سرگزشت هود برادر قوم آد را یاد کن آن زمان که قومش را در سرزمین احطاف بیم داد در حالی که پیامبران زیادی قبل از او در گذشته های دور و نزدیک آمده بودند که جز خدای یگانه را نپرستید و گفت من بر شما از عذاب روزی بزرگ میترسم. ترسم قالو فَأْتِنَا بِمَا تَعِيدُنَا اِن کُنتَ مِنَ آنها گفتند آیا آمده ای که ما را با دروغ هایت از معبودانمان بازگردانی؟ اگر راست میگویی عذابی را که به ما وعده میدهی بیاور اینم العلم عند الله و ابلغكم ما ارسلت بهی ولیکنی اراكم قوما تجهلون گفته علم آن تنها نزد خداست و او میداند چه زمانی شما را مجازات کنده من را به آن فرستاد شده ام به شما می رسانم وظیفه من همین است ولی شما را قومی می بینم که پیوسته در نادانی هستید فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتیم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو استعجلتم به ریحٌ فیها عذاب علیم. هنگامی که آن عذاب الهی را به صورت ابر ای دیدند که به سوی دره‌ها و آبگیرهای آنان در حرکت است، خوشحال شدند. گفتند این ابریست که بر ما میبارد. ولی به آنها گفته شد این همان چیزی است که برای آمدنش شتاب کردید تند بادی است وحشتناک که عذاب دردناکی در آن است تدمر کل كل شيء بمر ربیها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجز القوم المجرمین همه چیز را به فرمان پروردگارش در هم می و نابود می کند. آری آنها صبح کردند در حالی که چیزی جز خانه هایشان به چشم نمی‌خورد. ما این گونه گروه مجرمان را کیفر می دهیم این وَجَعَلنا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُم فَمَا أَغْنَى عَنْهُم سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا اذ کانو یجحدون بی آیات الله و حاق بهم با کانو به یستهزئون ما به آنها قوم عاد قدرتی دادیم که به شما ندادیم و برای آنان گوش و چشم و دل قرار دادیم اما به هنگام نزول عذاب نه ها و چشم ها و نه عقل هایشان برای آنان هیچ سودی نداشت چرا که آیات خدا را انکار می کردند و سرانجام آن را استهزامی کردند بر آنها وارد شد ولقد اهلکنا ما حولكم من القرى و صرفنا الآیات لعلهم يرجعون ما آبادی هایی را که پیرامون شما بودند نابود ساختیم و آیات خود را به صورتهای گوناگون برای مردم آنها بیان کردیم شاید بازگردند فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا یفترون پس چرا معبودانی را که غیر از خدا برگزیدند به گمان اینکه به خدا نزدیکشان سازد آنها را یاری نکردند بلکه از میانشان گم شدند این بود نتیجه دروغ آنها و آنچه افترا میبستند و نفرا من الجن فلما حضروه قالو انصتو فلما قضی ولو الى قومه منذرین به یاد آور هنگامی که گروهی از جن را به سوی تو متوجه ساختیم که قرآن را بشنوند وقتی حضور یافتند به یکدیگر گفتند خاموش باشید و بشنوید و هنگامی که پایان گرفت به سوی قوم خود بازگشتند و آنها را بین دادند قالوا یا قومنا اینا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بین یدین یهدی الى الحق و الى طريق طریق مستقیم گفتند ای قوم ما، ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده هماهنگ با نشانه های کتاب های پیش از آن که به سوی حق و راه راست هدایت می کند یا قومنا عجیب و الله. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم یا قومنا اجیبو داعی الله و به بهی یغفر لكم من ذنوبكم و من عذاب علیم ای قوم ما دعوت کننده الهی را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا گناهانتان را ببخشد و شما را از عذابی دردناک پناه دهد. وَمَن لَّا يُجِيبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضلال مُبِينٍ به به دعوت کننده الهی پاسخ نگوید هرگز نمیتواند از چنگال عذاب الهی در زمین فرار کند و غیر از خدا یار و یاوری برای او نیست چون این کسانی در گمراهی آشکارند اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن لبيب قادر بقادر على ان يحيي الموتى بلا انه على كل شيء آیا آنها نمیدانند خداوندی که آسمانها و زمین را آفریده و از آفرینش آنها ناتوان نشده است می تواند مردگان را زنده کند؟ آری: او بر هر چیز تواناست و یوم یعرضوا الذین کفروا على النار علیسه هذا بالحق قالوا بلا و قال فذوق العذاب بما کنتم تکفرون روزی را بیاد آبر که کافران را بر آتش عرض و به آنها گفته می آیا این حق نیست؟ میگویند: چرا؟ به پروردگار من سوگند که حق است در این هنگام خداوند میگوید پس عذاب را به خاطر کفرتان بچشید فصبر کما صبر العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون پس صبر كن آن گونه بران یانبران العزم صبر و برای عذاب آنان شتاب مکن هنگامی که وعده هایی را که به آنها داده می شود ببینند احساس می کنند که گویی فقط ساعتی از یک روز در دنیا توقف داشتند این ابلاغی است برای همگان آیا جز قوم فاسق حلاک می شوند؟